سلام به شنونده های کانال هزار افسان داستانی رو بهتون تقدیم میکنم به نام پاداش ماهی ها امیدوارم تا آخر این داستان همراه من باشید یکی بود یکی نبود روزی روزگاری جوون دلپاک و مهربونی بود به نام قلام که از مال دنیا فقط یه مادر پیر داشت قلام هر روز لبرود خونه می نشست برای مایه نون میریخت و با اونا درد و دل میکرد. مایه هم نون خورده ها رو میخوردن و میرفتن. یه روز مادر غلام بهش گفت پسرم تو هم خدایی داری. به امید خدا یه کاری بکن. خدا میگه از تو حرکت از من برکت. برو دنبال کسب و کار. بلاخره یه طوری میشه. غلام یه قرص نون و کمی پنیر برداشت. پوکچه نون و پنیرشو زیر بغلش زد و آماده رفتن شد. مامانش گفت: غلام جان، توی راه خیلی با تو همسفر سفر میشن. یادت باشه با هر کسی رفیق نشی. با کسی رفیق شو که وقتی نونشو قسمت میکنه بیشترش رو به تو بده. بعد اونو دعا کرد و به خدا سپرد. غلام اول رفت کنار رودخونه تا ماهیا رو دید، لبش به خنده باز شد و نصف نونه پنیرشو خود کرد و تو آب ریخت بعد با ماهیا خودافظی کرد و راه افتاد رفت و رفت تا اینکه توی راه همسفری رو پیدا کرد دوتایی رفیق شدن و با هم به اینجا و اونجا سر زدن تا کاری پیدا کند وقت نهار که شد مرد بخچهش رو باز کرد و غلام حرف مادرشو یادش اومد مرد نون و دو قسمت کرد و قسمت بیشترشو برای خودش گذاشت رو که خوردن قلام از دوستش خدافزی کرد و به راه دیگه ای رفت. بعد از بیابون گذشت و به دشتی رسید. جوونی بیل به دست توی گندمزار مشغول کشت و کار بود. قلام با اون رفیق شد. دوتایی با هم می و بر دوستش همیشه سهم بیشتر آب و غذا برای اون میزاشت. یه روز دوتایی به شهر رفتند دختر حاکم شهر مریض بود جا ها می میگفتند هرکی دختر حاکم از بیماری نجات بده میتونه با اون عروسی کنه اما اگه موفق نشه حاکمونو میکشه دوست قلام گفت بیا بریم من چاره درد دختر حاکم میدونه. میدونم قلام گفت ایداد، داد ای فریاد تو که از تبابت چیزی نمیدونی اگه بفهمن حکیم نیستی سرتو میبارند ما رو می دوستش گفت نه ترس خدا با ماست دوای درد اونم پیش ماست بعدم دوتایی دل به دریا زدن و به قصر حاکم رفتن جوان گندم کار دستور داد نوکرای حاکم حمومی گرم و آماده کنند اونقدر گرم که نتونی پاتو رو زمین بذاری بعد دختر و وارونه رو نردبونی خوابوندند و دوتا دوست شمشیر به دست بالا سرش بایستادن. دختر ترسید که نکنه میخوان اونو بکشند اون وقت داد زد و فریاد زد. گریه کرد و ناله کرد. دست و پا زد. دلش آشوب شد و کرمی که توی شکمش بود از دهانش بیرون افتاد. جوان گفت اونو به اتاقش برگردونید که شفا پیدا کرد. یکی دو روز گذشت حال دختر حاکم خوب شد. حاکم همونطور که قول داده بود سور و سات عروسی رو راه انداخت اون وقت دوتا رفیق و عروس به شهر و دیار خودشون برگشتند. وقتی که به خونه رسیدن دوست گندم کار هر چه هدیه از حاکم گرفته بود و به قلام بخشید دست عروس و هم توی دست اون گذاشت و گفت مبارک باشه برید به خوشی و خورمی زندگی کنید قلام که حسابی گیت شده بود پرسید چرا هرچی داری به من می‌بخشی؟ جوان گفت: یادت است اون روزا کنار دریا می نشستی به ماهی قضا میدادی من یکی از اون ماهیام و باید به اونجا برگردم. من احتیاجی به این ثروت و همسر ندارم. غلام از خوشحالی گریه کرد. دست دختر حاکم گرفت و با ثروتی که به دست آورده بود، پیش مادرش برگشت.